له مجازات گناهکاران هنگامی که دادگاه تفتیش عقاید بازجویی و داوری خود را در مورد متهمان به گناهکاری به پایان می‌رساند مجازات‌ها یا احکام توبه را صادر می‌کرد اداره مقدس در سرتاسر سر اروپا مجازات‌ها را در مراسم اجرای احکام علناً اعلام می‌کرد در اسپانیا و جاهای دیگر برنامه های نمایشی عمومی در کلیسه های بزرگ در فضای باز میدان شهر یا مح بزرگ دیگر به اجرا در میآمد برخی از مجازات های دستگاه تفتیش عقاید دستگاه تفتیش عقاید میکوشید مجازات با جرم مطابقت داشته باشد. برخی از مجازاتها بسیار سبک و برخی دیگر به شدت سنگین بودند. از آنجا که مردم در بسیاری موارد مستعد گناهکاری بودند، دستگاه تفتیش عقاید طی تی قرنها طیف گسترده ای از مجازاتها را ابداع و اصلاح کرد. در یکی از سبکترین اشکال مجازات، خطاهای فرد گناهکار در یک دوره، در روزهای یک شنبه، شاید از پلکان کلیسا علنان اعلام میشد. سرانجام دستگاه تفتیش عقاید اختباسی بسری از این مجازات را ابدا کرد که پوشیدن یک لباس رو با علامت زرب در زرد روشن بر روی آن بود. شخص گناهکار هنگام اعلام علنی جرایمش در کلیسای محلی این لباس خاری را بر تن می کرد. تکامل جدیتر این مجازات شامل پوشیدن این لباس نه فقط در روزهای یکشنبه بلکه برای مدت زمانهای متفاوت شاید حتی برای بقیه عمر شخص بود. در اسپانیا موتن سانبینتو این مجازات به یک شکل تقریبا هنری تحول پیدا کرد. سانبینتو یا ساماراس برای پوشش روزانه، مانند قباهای شرمساری که محکومان در مراسم اجرای احکام بتن میکردند غالبا غالباً منقوش با شعله های قرمز، شیاطین و افعی بود. شخص گناهکار افسون بر قبای بی آستین، یک کروسا، کلاه دراز نوکتیزی که مانند سانبینتو منقوش بود نیز به سر داشت. گاهی دستگاه تفتیش عقاید خواستار آن میشد که در جلوی کلاه علامتی نصب شود که دلایل مجازات آن مرد را به دنیا اعلام کند. علامتهای زنان را به نسب نصب می‌کردند. اگر شخصی در اختیار دستگاه تفتیش عقاید جان میسپرد سانبینتوی او را با برچسب نامش در یک کلیسای دومنیکن جهت عبرت دیگران می آویختند. دستگاه تفتیش عقاید از جامعهای های زربدردار متنوهی استفاده می کرد. به بدگویان بدخواه جامعه قرمز می پوشندند که نشانه زبان شرارتبار آنها بود. ساهران بتپرستان و شیطانپرستان لباسشان مزین به چهره های عجیب و غریبی بود که به موجودات گارگویل یا غولمانندی شباهت داشتند که در قرون وستا کلیسای جامعه را با آنها تزین می میکردند با آنکه پوشیدن جامع های در دار شکل نسبتاً خفیفی از مجازات قلم داد میشد علنی بودنش باعث می شد که خیلی شدید جلوه کند حتی کشیشی در مورد سنگینی بار این مجازات اظهار داشته عوام و ناس نه از توهین نسبت به کسانی که این مظهر رستگاری را به نشانه بدنامی به تنداشتن دریغ میکردند و نه از تمسخر. با انگشت تحقیر به آنان اشاره میکردند. مردم از همنشینی با آنها خودداری میکردند و از وصلت با آنها و فرزندانشان امتنامی ورزیدند. با وجود اعتراض اصخفها و عذر و بهانه آوردن معموران تفتیش عقاید به نفع آنها با آنها مثل آدمهای نجس و مترود رفتار میشد. سرانجام دستگاه تفتیش عقاید پذیرفت که این مجازات را به خاطر واکنشی عمومی نسبت به کسانی که نشانه شرمساری را به تن کردن تخفیف دهد. از آن پس کمتر و کمتر کسانی ملزم به پوشیدن این جامه‌های های ضرب دار در طول زندگیشان می‌شدند. دوره‌های دوره نیایش دستگاه تفتیش عقاید غالبا کسانی را که زمانی با عقاید بدعتگزارانی بازی کرده بودند ملزم می‌کرد که در چندین دوره نیایش گاهی حتی هفت بار در روز شرکت کنند. اغلب می‌شد نیایش ها را در منزل انجام داد. گاهی هم می‌شد آنها را در کلیسا و زیر نظر کشیش برگزار کرد. کسانی که مرتکب گناهان کوچکتر شده بودند می توانستند این مجازات ها را در دوره نسبتاً کوتاهی به پایان برسانند. اما برخی احکام متزمن تداوم دوره نیایش در تمام طول زندگی فرد تو بود. ممکن بود یک معمور تفتیش عقاید بران شود به جای الزام به یک دوره نیایش یک دوره روزهداری اضافی را نیز در نظر بگیرد. تاریخنگار آئل میکوک مورد پونز راجر را در قرن سیزدهم م ذکر میکند که نه تنها ملزم به تغییر دائمی رژیم غذایی خود شد بلکه تعدادی مجازات های دیگر را نیز متحمل گردید. پونز راجر ملزم بود برای همیشه از خوردن گوشت، تخم مرغ و پنیر و تمام خوراک هایی که از گوشت درست میشد پرهیز کند مگر در عید پاک، عید پنجاهه و کریسمس. او میباید سالی سه بار روزه چهل روزه بگیرد، مگر به واسطه ضعف بدنی یا گرمای هوا از آن معاف شود. باید سه روز یک شنبه زیر نظر کشیش دهکده با ترکه به پشت برهنش کوبیده شود. باید لباس متمایزی که دارای علامت ضربدر باشد بپوشد تا مشخص شود که او سابقاً بدعتگذار بوده است و باید هر روز در اشهای ربانی حضور یابد و در صورت امکان هفتاد مرتبه در روز و بیست مرتبه در شب دعای ای پدر روحانی ما را بخواند. و بالاخره باید ماهی یک بار پوست نوشته ای را که همه این دعا رویش نوشته شده به کشیش دهکده نشان دهد. شلاق زدن در ملعه عام گاهی گناهکاران نادم را در کلیسا در ملای عام شلاق می زدند. تا کفاره گناهانشان باشد مانند مجازات‌های دیگر، غرض از تحمیل درد و رنج ناشی از شلاق خوردن این بود که تصویری زنده و بازدارنده برای کسانی باشد که ممکن بود وسوسه شوند و در مسیر بدعتگذاری قدم بگذارند یا از دیگران محافظت کنند. قطعه زیر گواهی است بر آنچه مجازات تازیانه یا شلاخ زنی در پی داشت. فرد نادم با پای برهنه یا زیرپیراهن و زیر شلواری، با شمعی در یک دست و ترکه های مجری حکم در دست دیگر به کلیسا می آمد. بعد در جریان اشهای ربانی، در جایی که توجه دیگران را به خود جلب کند می ایستاد یا زانو می زد. پس از بیان سیره مسیح یا گرداوری اعانات و صدقات یا موعظه، او شمعش را در مهراب قرار میداد و ترکه ها را به کشیش تقدیم می کرد. بعد زانو میزد تا او را شلاق بزنند. به هنگام حرکت دست جمعی او با همان کسفت از پی کشیشان و خادمان کلیسا حرکت میکرد و در آخرین منزلگاه شلاق میخورد. به محض اینکه مجازاتش تمام میشد، با صدای بلند اعلام میکرد که این جزای گناه ها نیست که برخلاف مفتشان و دستگاه تفتیش عقاید مرتکب شده است. تازیانه زدن در ملأ دستگاه تفتیش عقاید عمل شلاق زدن را چنان ارتقاد داد که شلاق زنی در کلیسا به مراسمی پرطول و تفسیرتر و مهیبتر تبدیل شد تازیانه زدن در ملأ آم. گناهکار معترف را پیاده یا سوار بر یک الاغ در خیابانها به حرکت در میآوردند و در حین حرکت او را شلاق می‌زدند تعداد ضربات شلاق از یک تا دویست ضربه متغیر بود و این مجازات ها برای هم مردان و هم زنان در نظر گرفته میشد. گاهی جمعیت گرد می آمد تا فرد نادم را مسخره کند و برای افسودن بر درد و رنج او اشیایی را به سویش پرتاب نماید. به نظر میرسد که سن گناهکار معترف بر شدت مجازات تأثیری نداشت. اسنادی در دست است که دختران دوازده ساله و زنان بالای هفتاد سال را تازیانه زده اند. دستگاه تفتیش عقاید گاهی مردم را به سفرهای زیارتی می این شکل از مجازات از سفرهای ساده و مکرر به زیارتگاه های محلی تا مسافرت طولانی به سه زیارتگاه بسیار مشهور اروپا، سنت جیمز در کامپوستلا در اسپانیا، سپادشاه کلون، یا خود رم متفاوت بود زائر سندی با خود همراه داشت که حاوی راهنماهایی بود در مورد مکانهایی که باید از آنها بازدید به عمل می آمد و اعمال مذهبی که باید انجام میشد. این سند نقش نوعی گذرنامه را داشت که کشیش هر زیارتگاهی که زائر در آن توقف کرد آن را امضا نمود. از این رو وقتی فرد نادمی از یک سفر زیارتی برمیگشت مستنداتی داشت که به دستگاه تفتیش عقاید ثابت کند که همه تعهداتش را به طور کامل انجام داده است در حالی که امروزه به نظر نمیرسد که سفر زیارتی کار سنگین و شاقی باشد در قرون وسطا حتی یک سفر چندصد مایلی از موتن خود کاری بسیار دشوار و مستلزم از خودگذشتگی بسیار و خطر بیشمار بود چون این سفری غالباً به معنای گرسنگی کشیدن خانواده فرد نادم بود که در قیاب ناناورشان پولی برای تهیهه خوراک نداشتند. ما از روی اسناد دستگاه تفتیش عقاید میدانیم که حکم به سفرهای زیارتی به عنوان شکلی از مجازات مکررن به کار میرفت. تنها در سال 1227، به 427 بدعتگزار معترف اهل لانگدوک دستور داده شد که به سن جیمز در کامپوستلا سفر زیارتی کنند. مسافرتی 400 مایلی از طریق کور راه های پرخطر کوهای پیرنه. برخی این سفر زیارتی را با پای برهنه میپیمودند. پیمودند. احکام زندان اما برای کسانی که مجازاتشان زندان طولانی مدت بود، فکر به گرفتن سفر زیارتی به سنت جیمز ممکن بود جایگزین خوشایندی به نظر آید. چون همان زندان تاریک و ملالاوری که محل نگهداری مزنونان پیش از محاکمی آنان بود، غالبا زیستگاهشان برای بقیه عمر نیز میشد. قاعدتاً قاعدتن، حکم رسمی زندان که از سوی دستگاه تفتیش عقاید در مراسم اجرای احکام اعلام می حکم عبد بدون امکان آزادی مشروط بود، اما در عمل ممکن بود شخصی به زندان کوتاه مدت یا حبس ابد محکوم شود. در حکم سبک یا کوتاه که موروس لارگوس نامیده میشد، ممکن بود شخص در خانه خودش یا نهادی چون سومئی یا بیمارستان محبوس شود. چون دستگاه تفتیش عقاید غالباً سلولهای کافی برای نگهداری از همه محکومین در اختیار نداشت. از این رو برخی از زندانیان این فرصت را پیدا می کردند که به زندگی جمعی در نهادی که در آن محبوس می شدند بپیوندند موروس استریکتروس مجازاتی بود که برای کسانی در نظر گرفته میشد که جرائم بزرگتری مرتکب شده بودند نظیر تلاش برای جذب دیگران به عقاید بدعت‌گزارانه یا نگهداری کسانی که میدانستند در این رابطه مقصرند این کسان را به طور دائمی در زندان‌های دستگاه تفتیش عقاید جا میدادند که چنین امکاناتی را دارا بود و آنها را اداره می‌کرد. سلول‌ها از نظر شکل و اندازه متفاوت بودند، اما هیچ کدام به منظور کاستن از درد و رنج زندانی در نظر گرفته نشده بود. سلول‌ها معمولاً بسیار کوچک و بدون پنجره بودند. غالباً زندانیان را به دیوار زنجیر می‌کردند. گاهی پاهایشان را با قُل و زنجیر میبستند، غذایشان غالباً فقط نان و آب بود برخی از زندانیان را در زندان انفرادی در چالهای تنبیهی جا میدادند. در چنین شرایط سخت و بی‌رحمانه‌ای زندانیان قطع نظر از اینکه طول مدت حکمشان چقدر بود غالباً پیش از آن که مدت زندانشان به پایان برسد جان می‌سپردند